بسم الله الرحمن الرحيم والله حب لنا قبته اللهم بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم و على محمد خاتم الانبياء هذا بيته الطاهرين المهديين سيما بقية الله في السماوات والأرزين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعن ذلك ما حرص الله عباده المؤمنين بالصلاة والزكاة الحمد لله رب العالمين ك توفيقي داست مجدد خدمت عزیزان برادران و خالان بزرگوار در محضر سخنان بیبدیل و بیزمال امیر ملک ولایت مولانا و مختدانا امیر زانو بزنیم مولانا سلام محمد و محمد الله تعالی و گوش جان به سخنان دلشین و حکمتهای نورانی حضرتش به سپاری اون هم به باحان و به مناسبت ایام منعقد و متعلق به همسر گرانقدر و گرانسنگش سیدتون ساحل آدمین صدیقه تاهر و ایام شهادت اون بانوی بزرگوار. همان گونه خاطر دوستان عزیز استهزار دارد در سال گذشته در چنین ایامی توفیقی دست داد خطبه قاصعی نهج البلاغهرا تبه خطبه 192 دو رو خدمت دوستان عزیز آغاز کردیم و یه بخش بسیار قابل توجهی از مباحث آن رو در طی نوبتهای اون سال گذشته بازگو کردیم و گفته شد ملاحظه فرمودید که موضوع این خطبه شیطان شناسی و خصلت شیطانی بود امام آیات بسیار مباحث بسیار زیبانی رو و تکاندهنده ای رو پیرامون شیطان حربه شیطان شیطان صفتان شیطان گرایان متاثران از شیطان مطرح فرمودند که خواندیم، اما باز هم همان منوال و سخن ادامه دارد و وجود نازنین امام ادامه همان مباحث رو مطرح میکند جزوهای که خدمت دوستان عزیز است من یه سه چهار خط رو خواستم از دوستان که از اول فصل بنویسند تا بعد میرسیم به اونجایی که الان محظر اون باره که تون خوانده شد لذا به سرعت از اول همون بند و فقره اشاره میکنم که امام فرمود فالله الله شما را به خدا شما را به خدا فی عاجل البعقی و آجل و خامت ظلم و سوء عاقبت الكبر شما را به خدا مراقب باشید در تجاوزی که زود دامن شما را نتیجه آن میگیرد و ظلمی که و و سنگینی اون در آینده و قیامت گریبانتون را خواهد گرفت و سوء عاقبت کبر در نهایت امام دو نکتر و مورد تأکید فراوان قرار داد بقی یزودم و کبر و بدون تردید عزیزان عمدهترین، اومل انسان انسانها به وسوسه شیطانی و تحریکات شیطان همین دعا اسیبی است که امیرالمومنین مطرح می‌فرمایند کبر و ظلم کبر و ظلم. به همین خاطر فرمود فإنه ها مسیدت و ابلیس العظمى فأنهم این کبر و این ظلم و بلی مسیده این رو در سال گذشته این مباحث رو به واژه گفتم دارم مرور میکنم که برسیم به اول بحث اینها عامل سید ابزار سید شیطان است شیطان سید خود رو با کبر میگیرد شیطان سید خود رو با ظلم و بغی میگیرد و در اختیار می آورد و مکیدت الکبرا کهی دستی ابلیس و شیطان نیست مگر که بر به ظلم به همه تصاور و قلوب و رجال این یک است که حجمه می کند وثبه سعور به معنای وثبه وقتی خون در وجود انسان می جوشد چهره غیر میشد. میگن سوران و دم فلوحج تصاور و قلوب رجال حجمه می کند. این معکرهای و قیدهای شیطان در جان انسان و خانه می کند مساورت از سموم القاتله مثل یه سم کشنده که وقتی وارد میشه به قلب میرسه کار رو به پایان می رساند و تمام می کند کید شیطان که کبر است و ظلم است اگر در وجود انسان خانه کرد کار آدمی رو تباه می کند و به پایان می رساند. فما وکدی ابدان به این کبر شیطان و این کبر شیطانی و ظلم شیطانی و کید شیطانی هیچ کوتاهی هم ندارد چاه رو میکنه این چاهکن میگه آقا نمیتونم به سنگی خورده که نمیشمد میگن اکدل هافر یعنی این چاهکن کارش ممنوع شد دیگه نتونه صدا میده فمات وکدی ابدان شیطان هیچگاه کارش متوقف نمیشود روز و شب انبان ولا تشوی احدن تیر رو میزند به هدف نمیخوره از کنار هدف رد میشه میگن و رامی یعنی تیرش نخورد به هدف اما ولا تشوی احدا شیطان تیرش به هدف میخوره اگر کسی به هدف قرار بگیرد راهو نمیکند لا آلمان به علمه ولا مقلا فی تمره نه آلمی به خاطر علمش از دست شیطان در امان میماند و کبر شیطانی نه فقیری به خاطر اینکه خب حالا مثلا قناعی ندارد و موقعیتی ندارد در امان میماند یعنی شیطان نه به جاهل نه به آدم رحم نمیکند کند نه به قنی نه به فقیر هیچ ترحمی ندارد و حجمه و حمله خودش را دارد یعنی همه انسان ها باید منتظر آن باشند که در طوفان مهیب و ویرانگر کبر شیطانی و ظلم شیطانی واقع بشن پس بود چه بکنن خودشون رو مسلح کنن مجهز کنن که بتوانند در قبال این حمله‌ها و ها مقاوم باشند باید واکسینه کنن وجود خودشون رو در قبال کبر و در قبال ظلم این آنتیبادی که درست میکنند بالاخره باید مقاوم سازی بشه این بدن در قبال این میکروبی که میخواد بیاد وارد بدن بشه خدا این با شما بندگان خیش چنین کردند چقدر زیباست من همین جلسه اول مثل همیشه خازانه، متوازانه، خاکسارانه، خستو میشم و در نهایت تبازو و کوچکی و خردی از میکنم یا قبل حسن پهنای سخن شما در حدیث و در یه افاقی صحبت میکنید که ازهان خردی چون ما به زحمت خودش رو میرساند به فهم این کلام چقدر هندسه سخن سخن چیدمان کلام صدر و زیل عبارت لفظ معنا محتوا، قالب نمی تواند برون آید مگر از زبان کسی که انا مدینه تول علم و علیون بابا مگر از زبان کسی که چهار هزار نبی خلاصه می تو اندیشه و افکار این بازاروار و او می شود درب به ورود تمام متفکرات و اندیشه های خیل انبیاء و رسول. لذا جا دارد که چنین بگوید. حالا دقت بفرمایید. رسیدیم به اول بحث این نومت مون و ان ذالکه به خاطر این که شیطان پیر رو در چله کمان نهاده است قلب همتون رو هدف گرفته است نه زن می نه مرد نه فقیر نه غنی نه شیخ نه شام نه جاهل نه عالم به دلیل این وصف سگری اون چنینی شیطان که کبر و ظلم خودش رو فرو میبرد سم قاتل رو در وجود شما و شما رو نابود می کند و ویرانتون می کند خب این بر خداوند صبحانه است که بندگان خودش رو در قبال چنین خطراتی مقاوم می چگونه مقاوم می کند خدا ما را در قبال این حجمه ها که هیچ اثری هم نکند و خاصیتی در وجود تک تک شما عزیزان نداشته باشد این حجمه های ابلیسی و ان ذالکه این ان عین نون این ان تحلیلیه و لعج لذالک به این خاطر به خاطر اون چه گفتیم ذالکه و ان ذالکه یعنی لعج ما حرس الله مامای اصول است ما هرصا لاهو المؤمنین به همین خاطر خداوند هرص حارس نگهبان مدینه که تشریف مریدی که از اون اوستوانهایی که خیلی دوست دارید کنارش بیستید، ایستید نماز بگذارید، اوستوانه هرصه اون هرص حفظ جایی که امیرالمؤمنین گاه گاه می و حفاظت و حراست از جان شریف نبی اکرم می‌کند و به خاطر این حرس الله و خدا حراست کرد حفظ کرد عباده المؤمنین بندگان مؤمنش رو از این تیر در چلی کمان نهاده ابلیس که کبر ظلم است با چی حفظمون کرد؟ به صلات و زکات و مجاهدت سیام فلعنیام المفروزان خداوند وجود بندگانش رو با یه سازوکارهایی، با یه تحصیل مهارتهایی و اموری چنان مقاوم کرد که به هیچ وجه مدخلیتی شیطان در وجود ایشان نداشته باشد و اونها چیست؟ با ایجاد روح عبادت و دندگی و هایی از عبادت که با وجود انسان کارستان میکنه، سه رو را امیرالمؤمنین گلچین میکنه و به بیانی میخوام ارض کنم از حکمت این سه موضوع و سه واجب اهلاهی گوشه ای از آن رو ساقب ملک ولایت به بیان زیبا و دلنشین خودش آشکار می‌فرماید. برای اینکه در در وجودتون کبر فروع نرود برای اینکه دستتون به ظلم به سوی دیگران دراز نشود و چنین فریفت یه مرام شیطانی و وسابس او نشوید، خداوند به سلات. خدا نماز را بر شما فارس نمود به سلات و زکات و مجاهدت سیام فلعیام المفروزات اجازه بدید رو خط خود امیر المؤمنین توضیح میدم. زکات و مجاهدت سیام و این جد و که شما در روزداری دارید در ایام مفروز شهر رمضان و ماه سیام خب حالا تسکیناً لعترافهم و تخشیعاً لعبسارهم و لنفوسهم و تخفیزاً لغلوبهم و عنهم للخویلا آنهم چقدر لطیف و دلشی فرمان خداوند اینها رو قرار داد این واجبات رو تسکیناً لأطرافهم این نماز را به این عبادات را جوری قرار داد که اون چموشی و اون دشواری و زمختی رو در وجود شما و اجزاء و جسم و جانتون بگیرد اطراف به جوارح انسان اطراف میگویند دست و پا و سر و مجموعه اجزاء وجودی انسان بخش و پاره هر شئی رو طرف و شیع میگویند جمعش میشه اطراف خداوند تسکیناً لعترافه هم برای یک تمرین تسکین آرامش بخشی از استراب و تلاتم بدر آمدن نماز را بر شما مسلمانان قرار داد و تخشیعا لعب سارهم ببینید امام فمند تسکینن لعترافهم بود بیرونی تخشی ان ساره من خشون که در بسر و در جان و قلبتون و بسیرتتون باقی می‌گذارد و تزلیلا لنفوس هم و زدوتی که در نفس میدهد یعنی امیر و المؤمنین به سراحت از بزرگترین راه های زروبن کبر در وجود انسان همین عبادات مفروض رسمی است که یه مسلمان دارد که در صدر صدرون ابتدا امام نماز را مطرح فرمود همینطور یعنی مسلمانی که پنج نوبت در شبان روز از صلاة المکتوبه میاد و میشوید وجود را آماده میکند آب تاورد به جسم جان میزند و در پیشگاه حضرت باری تعالی میستد شریفترین عضو را الان امام میفرماید به ظاهر برپسترین شی که خاک است نیند آمد در قبال حضرت باری تعالی دوتا می کند و خاشعانه خودش رو برخاک می افکند در نظر حضرت زنجلان و میفهمد چه می کند عزیزان میدونه در چه می کند. یعنی با گفتن الله اکبر همه چیز رو پس میزند و لا اله, اله رو به تمام معنا در وجود خودش مستقل می کند. تمام نیاز خودش رو با یاک که نعبدو و یا که به حضرت بی نیاز اثبات می کند تی می کند این مراحل سلوک رو وادی به وادی منزل به منزل کار به جایی می کشد که در نهایت السلام علیکم و رحمت الله تسلیم رو که می گوید خودش رو از این سیر سلوک تسلیم شده به پروردگار از جا می خیزد این انسان دیگه در وجودش مویه ها و رگه هایی از کبر نباید بماند نباید بماند انسانی که این وادی رو به وادی به وادی منزل به منزل طی میکنه اون هم نه یک بار دو بار هفته رکعت واجب رو منهای مستحبات اون انجام میدهت امیرالمومنین میفهمد عجب ممارست و تمرینی است برای که بر زدائی و ظلم به بسوعی چقدر مهارت قوی و مهمی در وجود انسان مؤمن و مسلی ایجاد می کند تسکیناً لعترافهم و تخشیعاً لعبصارهم و تزبیلاً لنفوزهم و تخفیزاً لقلوبهم تسکیم و آرامش یعنی میتونید بگید کارکرده های نماز رو به این عبادت رو امیر و داریم فهمند تسکیم و آرامش از ویژگی هایی که شما در نماز معمور و انجام و رعایت اون هستید چیست؟ تومنینه یعنی خیلی از حرکات شما اگر در نماز انجام بدید مبتل حرکت زیادی است این خلل در نماز به اسطلاح فقی و آدام فقیهان در فقیه بابی داریم ما بن فلخلل فسلاح. چه چیزهایی رفتارهایی خلل در نماز است. گاه ممکن است یه حرکت یک کسی در نماز یه منت پریشی می کند می پرد بلا می پرد با این. خلل در نماز است. اما گاه ممکنه است ظاهر از جهت فقیهی خلل نباشد. اما از جهت معرفتی خلل نباشد. اما که شنیده ای تنگامی که نبی مکرم رد شد. دید تو نماز این آقای نمازگذار داره این اینطوری میکنه داره فرمودند طوری میکنه به خود. نبی مکرم فرمدن به خدا قسم اگر قلب او به حقیقت نماز رسیده بود و خاشه شده بود اجزا و جباره اون هم تسکین پیدا میکرد خضوع پیدا میکرد امیر می فهمد وجودتان وجودتون روی تسکین می تمرین میکنیم در این هفته که در طول 24 ساعت اجزا و جواره ما خصمانه و ظالمانه در قبال دیگران نباشد هنگامی که شما سر رو پایین میندازید که مسلی هنگامی که ایستاده است به کجا نگاه کند به مسجدش، سجدگاهش نگاه کند. هنگامی که در روکویید به کجا نگاه کنید به قدومتون نگاه کنید هنگامی که وجود انسان چنین خازانه در نماز تفتح رکعت و تجربه و ممارست میکنه در طول 24 ساعت در چه میکنه؟ این الگو رو پیاده میکند. کند تسکیناً تخشی اطرافه تخشیناً هم دیگه این نگاه شرار آتش خشم هست در نگاه شما نیست یه نگاه آرام یه نگاه متوازانه تزلیلا لقلوبه یه دل نرم یه دل نه که هیچ نخوتی در او وجود ندارد و تخشیعا لقلوبه قلوبهم یه خشو و برجان میشه خروجی و نهایت برون آمدن از نماز و اذهاباً للخرهنا عنهم خدمت دوستان گفتیم اون ها متبخترانه و متجبرانه ای که در وجود انسان از ماده خیل و عسب میاد چون نوعن اسب رو میبینید یه کورس کوسمیگذاره بعد قدم قدم برمیدارد این یال رو کج میکند با یه نفحتی نگاه میکند اسب اونها هم که سوار اسب میشدن خیللا میگرفتون ها رو اونا هم مثبت به بقیه که سبا را قاطر بودن دولاغ بودن این هم یه حسی پیدا میکنند این که خویالا فرمود ازهابند الخویالا انا هم میبرد این خویالا را برای اون که ببرد این خویالا را از وجودشم چرا؟ حالا لما فیضال کم من تعفیر اتاق الوجوه به تراب توازهند چون خداوند در این نماز در هر رکعت آن دو سجده بر شما لازم کرد که این تعفیر اتاق وجوه است تعفیر از ماده افر عفر یعنی خاک تعفیر یعنی پیشانی بر خاک نهادن و ساییدن به شیر میگن افرنات در میان حیوانات استعزار دارید یه حیوان که به تکبر معروف است پلنگ یعنی آقا فلانی پلنگ دماغ است این اصطلاح در ادب پارسی هست فلانی پلنگ دماغ هست. یعنی خیلی متکبره اما شیر که سلطان و سباقش میگن شیر بیشه هست سلطان حیوانات هست اما ماهیتن این حیوان متکبر نیست لذا از اسامی شیر در کلام معرب افرنات و هیزوم و شیر. ابو نصر فراهی اسامی شیر رو که در نساب و سبیان مطرح میکرد یکی از اونها افرنات یعنی شیر خاکی و قال افریتون من الجن انا آتی کبهی قبل ان تقوم من مقامک به سلیمان یک جن متواضع. و خاکی یک جن خیلی متوازه گفاهای سلیمان تا از بلند نشدی من تخت ملکی سبا را برای تو می آورم قدرتشم دارم قویم امینم، می توانم چنین بکنم پس عفر، خاک، تعفیر، جبین بر خاک مالیدن حالا دقت بفرمایید وقتی انسان این ذراعف رو از زبان این پهلوانان میدان عبادت میشنود بعد, بعد جا داره که اینها رو تهم کنه، بچشه از این زاویه وارد بشه بر این عبادات من تعفیر اتاق، اتاق جمع عتیق اتیق همانو که میگید عتیقه بلاخره در فارسی اتیقهش میکنیم به یه شیء گرانباهای خیلی هرزشمند نفیس میگیم آقا این اتیقه یعنی قیمتش چیه؟ خیلی بالاست من اتاق الوجوه به خاطر اینکه خداوند اتاق وجوه شما رو گفت رو خاک بمالید اتاق یعنی چی؟ گفتیم گرانقدر. اتاق الوجوه و چهره اون تابلوی چهره انسان پیشانی آدمی تحریف سجده در لغت عرب وز اول جبهت قلل پیشانی را بر خاک سانیدن و گذاردن و مالیدن خو خاک هم که دیگه زیر پای هم هست پیشانی که عضو برجسته همگان هنگام که میان به این سر رو میگذارن برخاک سجد تلک یا رب تعبدن و رقا رو میگن همینجا خدمت دوستان ارز میکردم الله اکبر عزیزان من در نزد اهل عرفان و اهل دل سجله یعنی انتهای خود و آغاز جلوانت حضرت دوست یعنی شما وقتی میایستید و بعد قامت دوتا میکنید و دیگه میگید یا چی بگم؟ من اصلا کجا که بخوام بگیستم مقابل تو؟ با تو سخن بگویم و اهدنا بگویم. کجا که من تو رو تسبیح کنم؟ ای برون از به مقابل و قیل من. خانک بر فرق من و تمثیل من. دیگه رو به خاک میندازید وقتی به خاک افتادیم یعنی خدای دیگه من تمام تسلیم. هیچ. فنا. حالا میشه به وجه باقی بعد فنا و کل شهر. وقتی شما فانی میشید با سجده خودتون رو محو میکنید دیگه جایی نیست که اشراق و اشراق و تجلیات الهی بر جان و دل ساجد فرود بیاد آغاز به شلطاف خداوند اگر به مفهوم واقعی سجده محقق شود از ما امیر فرمود لما فیزال من تعفير تاقل وجود به تراب با خاک تواضعا و التساق کرائم الجواره بالعرض تساهرن التساق چسباندن کرائم الجواره دست بلخواه وقتی میخوان زینت کنید کجا رو زینت میکنید؟ این انگوش رو زینت میکنید نمیدارم این مچ رو زینت میکنید دست خودش گفت که بدالیم اینها مئسمانهی نجم و و کفن خزیبن زینت بنانی و بالله ما قدری به این داریم به سب این رمین جمرت مرد ام تو موسیب حج اون شاعر ارز به خدمتون مزخرفگوی بنی اومیه و چاپلوس دربار بنی اومیه خاطرات شخصیشو میگه که این وقتی هم که رفته بوده به حج بعد دیدیم که داره سنگ میزنه دستهایی دیدم که اصلا مات موندم از این دست هایی این خانم بعد نفهمیدم تا شد یا هفت شد یا چند تا شد این سنگ ها بعد آلیه منها مئسمون هینجم خب دست زیبایی و اون ظرافت و اون جایی زینت بودن و اون خضاب کردن و اون رنگین کردن اون کرائم و اعزابش میگن این شما در سجده چه میکنید؟ کف رو خاک میگذارید انگشتان پا رو میگذارید اون زانو دقیقا با وضعیت و مفصل با حالت حرکات شما برخواستن نشستن تمام تصرفات شما بر اساس این مفصلتون برخاک میگذارید هفت موضع رو میگذارید شش تا به اضافه پیشانی که اینا میشن کرائم جواره. حضرت فرمود وقتی میچسبانید این کوارم", کوا", کرائم جواره رو بلعض حسان قرن یعنی میخواد فرو برید تو خاک خودتون سقیل خونید با خاک مف کنید و یکی کنید خدا چه میکنند با چنین انسانی که رو از وجود او میزدانید و به در میرود این در مد نماز اما در مد روزه لللحوق البطونه بالمتونه من الصيام توللا و اینکه شما میاید این شکمه ها رو به متون میچسبونید متون متن پشت اون قوام بدن یعنی گرسنگی رو چشیدن و اندرون از طعام خالی دار تا درون رو به معرفت بینی وقتی میاید رمضان روزداری همین عرض بخیر دو سه روز قبل من در شیراز یه دوست عزیزی که ازه دولت اومده بود از متخصصینی که اونجا مشغول کوششن و کار علمی رو تئون می‌کنن میگفتن رمضان رو گذشته 21 ساعت روزهای روزه ما بود 21 ساعت من خودم تجربه 19 ساعت روزه‌داری رو در قاره آمریکا دارم که 19 ساعت رمضان ما شروع شد یه سالی سال فکر می‌کنم 2011 بود یا 2010 بود که 19 ساعت روزهداری شد خب اینها با تلاش کوشش و های اجتماعی اما اللهم لک الصوم و, و عنا رزقه افطر وقتی بندگان خدا چنین میکنند و متحمل میشن این گروسنگی رو به تعبیر امیرالمومنین المونین میچسبانند این بتون رو به من سیام تزللن یعنی میگن خدایا این مایه و آب حیات، این نانی که دادی در سفره دست نمیبرم تصرف نمی میکنم خدایا من حاضرم نگاه به این نان بکنم نگاه به این آب بکنم اما اطاعت تو رو پیشه بکنم خدا من با چنین طاعت پذیری اون نخلت و قروب سرکشی و مقابله رو از وجودشان به در میبرن وقتی اینا چنین مطیق میشن چنین پذیران میشن که از اصلی ترین نیازهای عادی روزمره انسانی و بشری خودشون براحتی میگذرن خدایا تو گفتی بر سر و چشم من است، فمن شهد منکم و شهر فلیسون اگر فرمان تو بر روز است تمام وجود من پذیرای اون خب این موجب میشه به تعبیر حضرت شیطان دیگه دامش رو نمیتونه بندازه به میگید کتب علیکم السیام کما حال علالوین من قبلکم لحلکم تتبون تقوه هم که اومد شیطان فرسنگ ها از انسان دور خواهد شد دیگه اون مسیده سید شیط دام شیطان کار نمی کند به دنبال اون سوم چون سه تا عبادت رو فرمود صلات رو زکات رو و سوم رو سومی که زکات بود معما فزکات خوب دقت بفرمایید من صرف سنارون تلعز وقتی خداوند دستور رو به زکات داده به شما صرف میکنید موارد زکات رو انجام میدید از بهرایی که بردید عمل میکنید مسارف هشگانه‌ای نماز رو پرداخت زکات رو پرداخت میکنید بنابر اون چه که تعالیم نورانی وجود و مبارک خاتم انبیاء محمد مصطفی <س propri> <اللحمسلام سلام duh> <سلام> <Mus pregnancy> <réussi> حالا حضرت میخوان وقتی این چنین می شود و غیر ذالک الا اهل المسکنت و الفقر و غیر سمرات زمین بقیه درآمد های زکوی رو وقتی میدید و عقل و مسکنت و منق فقر کبر رو از وجودتون بیرون میاره چطور؟ یک پرداخت زکات یه نوع شکر است عزیزان یکی از مصادیق بارز شکر گذاری در متون ما پرداخت زکات است و این نکته خیلی مهمه که توجه میکنم توجه میدم ذهن بارک عزیزان رو ببینید ببخشید بذارید این رو من اورفیش کنم محمول ملموسش کنم خب بالاخره این پدر و مادر توقع داره در ذهن خودش حتی به زبان هم نمیآورد که من این شرایط سنی رو این وجود رو من مادر من پدر برای این فرزندم مهیا کردم خدا می داند نکردم اونجا در توانم داشتم براش ایجاد کردم سخبی ها رو خودم تحمل کردم خودم به وقتش نخوردم نپوشیدم تا زندگی این آزاده به این دختر خانم رو مهیا کنم خودم هر گونه بود به خودم فشار آوردم اما خواستم اون زندگی خوبه در رفاهی داشته باشد توقع دارد که مثلا این فرزند بگوید پدر مادر میفهمم چه کردید با من متشکرم گوید تمام خستگی ها از وجود این پدر و مادر میره با همینی که متوجه میشه فرزندش زبان و لسان تشکر و فهم این معنا رو داره یه آرامش تو وجودش میاد اما چه مانع میشه که فرزندان چنین چیزی رو نمیگویند و بیان نمی کنند؟ تو زهن خود این آغازاده به دختر میگه وزیفته میخواستی بچه نیاری اسم این یعنی چی؟ یعنی کبر ابلیسی یعنی شیطان اومده تو وجود این فرزند رخنه کرده و رو دقیقاً فرو برده است. هیچ سر بالا نمی آورد زبان تشکر که نه زبان توقع و گلایه هم آری من مثال زدم این مثال اجتماعی گفتم خدمت دوستان حالا این رو در رابطه با معلم و شاگرد بگید استاد و شاگرد بگید در در رابطه با هم صاحب حقی بگید نسبت به کسی که معامله میکنه من این رو بارها گفتم فاش می گویم و از گفته خود دلش آدم. بنده عشق و از هر دو جهان آزادم همینجا خاطرم هست تو بلاغه یا تو مکارم الاخلا خدمت دوستان از کردم کاهی بنده می اندیشم. با خودم فکر می آقای انسالی اگر تو رسیدی به اینجا به این موقعیتی که خدا به تو داده است و کرده است بشین قلم کن لیست کن ببین چه کسانی در رسیدن اینجای تو نقش داشتن از اون محلت شروع کن. از اون کسی که تو آسود خوابیدی و شب اون نگهبان بیداری خوابیدن تو بود با چشم بیدار از تمام اون کشاورزی که نانشو کشت و تو خوردی تمام اینها رو رقم کن تا برسد به پدر، مادر، همسر تا برسد از معلمان، بزرگانی که وجودشون رو محف کردن تا این شم وجود وجود رو افروخته کنن و روشن کنن بعد فکر میکنه انسان چقدر این شانه زیر بار این محبت ها قرار دارد و چه زبانی باید بگوید به چه بیانی باید تشکر از این ها بکند به دعاشون کنند. کسی که چنین روحیه ای رو نداشته باشه اسم این در متون اخلاقی ما جبار عزیزن جبار اون ظالمه تا که نرون ها و چنگیز ها و صدام ها نیستن جبار یعنی من علی حق یعنی کسی که برای هیچ کس نسبت به خودش حقی قائل نیست از همه طلبکاره این میشه جبار تو گوشمون باشه این میشه جبار زبان تشکر عزیزان مساوی است با تواضع کسی که تشکر میکند یعنی تواضع داره یعنی تونسته از کبر بگذره گذار از بحران کرده از بحران کبر گذار کرده به همین خاطره که شیطان وقتی برای خدا و بندگان خدا خط و نشانه کشید چیزی رو که گفت از بندگانت میگیرم چیه؟ گفت ولاتجد و اکثرهم شاکرین اگه من شکر رو از بندهات بگیرم دیگه تمام تو مشت منم دیگه اینها رو خلاص شون کرده ولاتجد و اکثرهم شاکرین وقتی انسان معده زکات میشه یعنی میگه خدایا از توست ای از تو اجابت همزه تو ایمنی از تو محبت همزد برادر من که خب دیروز مشاهده فرموده چه رحمت زیبایی شروع به باریدن گرفت در این شهر اسمها چقدر زیبا اومد در شهادت سیدت و نسائل آنمین. این رحمت الهی جاری شد بالاخره اگر باران به کوهستان نبارد به ساری دجل خوش رودی چه بونه خداوندن تافه خودش خدای من چه نقشی دارم در این نزولات جبی در این تغییرها با هوا من کجای کارم پروردگار؟ بلاخره سر به سنا می آورم به سجده تو به تعظیم تو به شکر تو به سپاس تو در قبال همه نعمتهایی که برای من ارزانی کرده این روح بندگی رو تو وجود انسانی ایجاد میکنه کنش و گذاری پربردگار حالا وقتی که من حاضرم خدای تو این نعمت رو دادی رویانی دی چنین زهر تخم برخواست 70 تخم حالا به من میگی یک دهم ده تو این محصول یک بیستم تو این محصول چشم با کمال وجود من این رو به عنوان و گذاری و روش درست استفاده از نعمت تقدیم میکنم نتیجه دن که از درون معدی زکات میره من از جانش میره یک دوم وقتی که انسان این حادت رو انجام میده روزه رو که میگیره تو اون خطبه شعبانیه داریم که همگام میکنه خودش با فقران بندگان خدا خدای منم تمنی کنم بینم نخوردن نداشتن چیه؟ ببینم چشم نگاه کردن و دیدن دل و زبان نخوردن چه تعمی داره؟ من هم ارادی این کار رو میکنم نتیجهش میشه خضوع خشوع گذشتن از کبر به همون طور خدا من حاضرم مالم رو بدم دستم رو خالی کنم ببینم این چه تجربه برای من میاره کبر را از بین میبرد و خضوع رو در وجود انسان میآورد. آن ما فی فیحازه لفظال خوب دقت کنید آن ببینید بیان عمیر المؤمن آن زرو یعنی چی نه که ببینید بلکه تعمل کنید تعمق کنید تأمل کنید الا ما فی من قمع نواجم الفخر من ده بار خدمت دوستان گفتم آنچه چه بنذر می فقط ما بون رس محتوایی سخن حمیره دیگه ما به لفظ و بیان و سمانتیک کلام امیر و فونتیک کلام امیر و زیباشناسی های زبانشناسانه اصلا فرصت ورود نداریم اینجا مقتضای انجمن ما نیست اصلا که من مباحث فنی بلاغی و ادبی رو مطرح کنم که چطور حضرت من قمعه نواجم الفخر و قدر عید ال... چطور این کلمات رو به کار میبره حضرت از کجا میاره این واژگان رو چجور این آره هم می و به یک موسیبار سخنی ایجاد می کند که اگر کسی آشنایی با این مباحث باشه مات میمونه و میفهمه فهمه اینها نمیشه مگر مگران که علمانی رسول الله الف باب من, من اله علم لی من کل باب الف باب اون لحظات آخر رسول خدا علی رسول خدا علی داره میگه پیامبر بیغه گوش همین رو مؤمنین سار رحمتی داشت میگاد این چی با پیامبر با شما فهمود پیامبر هزار در به علم رو برای من گشود که از هر در هزار در به علم گشودش یک میلیون باب علم رو پیامبر بر من باز کرد من قمع نواجم الفاخر و قدع توال که ببینید این اعمال با شما چه میکند از غم غم رو شما با یک واجه دیگه با هم به کار میبرید قل او غم یعنی گاه آره رو میندازید از رو میبرید گاه میایید درخت را از چی در میارید از ریشه در میارید گاهی قلش میکنید گاهی قمش میکنید حضرت فرمود من غم نواجم الفق این اعمال قمع میکنه از ریشه میکنه نواجم از ماده نج میاد به ستارگان میگن نجوم چون یه مرتبه طلوع میکنن سر میزند از این فخری که در سینه و در افاق نفس شما طلوع میکنه سر میزنه چیزی که میاد ریشکنش میکنه این هاست این اعماله این عباداته که ریشکن میکنه و قدع قاده قیل جلوگیری قادع یعنی جلودان و جلوگیر تواله جمع تالعه اونه که طلوع میکنن از طلوع کهبر شروع شدن کهبر هم در وجودتون دست برمیدار ببینید اصلا من میخوام بگم مدهیر میمانه سال حقیقتا تو تب امروز میگید آقا ما دو تب داریم تب درمان داریم تب پیشگیری داریم کدوم مقدم تب پیشگیری؟ امیر المؤمنین فرمات خاصیت این اعمال هم جنبه درمان است هم جنبه پیشگیری است هم قمغه هم قدره هم درمان می هم پیشگیری می از فخر و کبر و چنین با وجود شما عمل می کند نظر نظرتون اما وجد تو أحد من عاعلمه یه تص شيءئ من عاشاء اللا ان علت تحت رو تعمل جلاجد تلی و بهقولولصففعاء غیرکن.یه جله امیر مین از مخاطبان خودش من در طول تاریخ داردن یه بخش مختصی دیگه رو از این قسمت میگم و کفایت میکن. من نگاه کردم فما ما وجد تو أحد ملان عالمین یه تص شيء ملاش ها دیدم این کسانی که تأثب متکبرانه دارند یعنی نسبت به یه چیزی اون پافشاری و پیلستگی رو دارن سرم بشکن، نرخم نشکن و یه فخر فروشی این چنینی دارن یه علتی تو کارشون گشتن پیدا کردن با اون فخر کردن با اون. یه آمل نجادی، آبی، خاکی، نمیدانم علمی، نسبی، حسبی، مالی، پدری یه چیزی پیدا کردن و به اشتباه کردن فکر کردن اولوکه آباء و این هم به مثلهم از یا نو یوجریر پدران ما این چنین آن آباهایی که ما اونچنان است نمیدانم این چیزها لحد نظر تمام و وجدت احدن من الان عالمین یتعصب لشیء من نگاه کردم ندیدم احدی از عالمین تعصب به ای داشته باشد که از مهمترین نشانه های کبر چیست تعصب نابجا لشیء الا ان علت من... تحتمل تنبیه الجهلا دنبال یه علتی گشتن که جاهلان رو با اون علت هم به معنای ظاهرسازی و فریب دادن. فریب بدن نادانان رو که بگن ما برتریم. اونی که الان از بزرگش دارید میبینید تا خردش در جامعه بشری. اونی که میبینید یه جماعتی یه سلطجرانی متچبرانه دارن فریبکارانه و ریاکارانه روش فکر خودشون زندگی خودشون رو و منشون رو متعصبانه و متفکرانه و فخورانه دارن بر جامعه بشری تحمیل میکنن شرق و به دنیا بر مسلمانان میخوان تحمیل کنن تا بیان ابعاد کوچه که فردیش رو ببینید او حجتن ندیدم کسی رو تعصب داشته باشه مگر اینکه دنبال این چیزی گشته یه دلیلی پیدا کرده که تلیتو به اقول صفه ها تلیتو لا تب قلبی لا تب نفسی یعنی فرو رفت چسبید تو قلبم یا حجتی رو پیدا کرده که تلیتو این رو ملتصق کند بچسباند به اقول افراد کم فکر و کم ذهن که از اون طریق فخر خودش رو و تعصب خودش رو برساند د کم غیر شما همه یه چیزی باانه ای برای تعصباتشون پیدا کردن اما شما مردم کوفه شما حتی یه باانه ای برای تعصب ندارید و انکن تا شما تعصب دارید برای یه چیزی که ما اورف لهو و وله نه علت داره نه سبب داره اما ابلیسو فتعصب علی آدم الاصل اما ابلیس تعصب کرد بر آدم به خاطر اصلش چی گفت گفت من از آتشم نارم تو از خاکی و طعن علی خلقته خلقت زد و سرزنش کرد آدم را گفت انا ناری و انت تو خاکی من ناریم من از نار و نورم حالا اینا دیگه جوابش داده شده میدونیم که این قیاس ابلیس قیاس باطلی بود اگه بخوایم نقض کنیم بهش میگیم مگه همیشه حق تقدم تو میگی خاک یعنی خاک مثلا تیره آتش روشنه تمام حیات از کجا سرچش میگیره می هم از خاک سوزندگی و ویرانگری مال چیه؟ مال و آتش خب پس این که فضیلتی نیست برای آتش گذشتن از این که اصلا بحث آدم و بحث شیطان و ابلیس بحث جسم نبود دوش دیدم که در گل آدم به سرشتند و به پیمان زدن نبود بلکه بحث جان و روح آدم بود که مورد سجده ابلیس و منهایی که قرار گرفت نه جسم خاکیش و اما اقنی و من اقنی رو دیدم امیرالمومنین میفهمد من مطرفت الامم این مطرفان این طرفهانون امتا که تعصب و تعصب آثار لاصار نه. اینا به پولشون قدرتشون و ثروتشون تعصب و فخر داشتن گفتن نه ما اکثر انوالن و اولادن و ما ما نحن به معذبین تکیه کردن به مالشون قدرتشون زودشون زرشون و گفتن نه ما وضعیت خوبی داریم ما مورد ازا... عذاب الهی هم واقع نمیشیم فامکان و لابد هن العصبيه حالا یه بابی رو باز میکنه امیرالمومنین که بی‌نظیره اگر بناست تعصب داشته باشید بیایید من تعصب درست رو به شما آموزش بدم من اهلیم بگم بله تعصب هم می خوب باشد اما به چه شیوه‌ای باید باره. همین تعصب می چه کبر رو ببرد به جای اینکه تکبر بیاورد ان شاءالله زانو بزنیم ان در محضر گرانقدرش بدانیم اجازه بدید من همینجا چون روز شهادت متصل کنم این بحث رو از نابلای سخن به یه جمله ایه، انشالله استفاده کنیم در این سابقه شهادت. الان از کننده خدمت متازیزان. فرمود علماه نی رسول الله الفباب من الاعلم. علاوه فرمود هزار در به رو پیامبر به من آموزش داد، از آن هزار در به علم گشوده شد، بعد می مطالب متالب. این خطبه ی ای عمیرالمومن در زمان خلافت حضرت گفته شده. یعنی امام این رو بعد از 25 سال خانه و بیست سال بعد از مثل امروزی یعنی بعد از چنین ایام شهادت سید سائل آنمین میکن اما میگم فاطمه چه کردی تو و خدا با تو چه کرد این مطالبی که امیر نمیفرمان اینجا اون بانوی هجده ساده وقتی اومد وارد مسجد پیامبر شد لاست به خونا را به جلبا با وقتی پوشش خودش را گرفت آمد وارد مسجد شد. وقتی پردر و زدن فاطمه شروع کرد به سخنرانی کردن تا که شروع کرد هم دو سنا رسید به نام پیامبر زجهی در مجلس بلند شد که فاطمه ایستاد. من نمیدونم چرا؟ که وقتی نام پیامبر از زبان فاطمه خاره شد با چه آهنگی گفت این رو که ارتجل مجلس ارتجام دونید چی؟ یعنی زلزله هفشلیشتری مجلس به زلزله افکند فاطمه مجلس رو بعد شروع کرد به هم دو سنا و همونها که می‌دونید وقتی هم من همینجا در ایام فاطمه یه در انتهای مباحث تفسیر اشاره کردم به عظمت این خطبه منظورم اینه تا رسید به اینجا که خوب دقت کنید فاطمه شروع کرد اصرار احکام و حقایق شریعت رو بازگو کردن چرا خدا این احکام و وظائف را بر دوش مسلمانان نهاده است جهلا ناهل ایمانه تطهیرن نکن من شرک خدا ایمان رو قرار داد که شما را از شرک پاک کنه. رسید به اینجا و این موارد رو امیر المومنین 25 سال بعد از شهادت فاطمه میگه 25 سال قبل کنار منبر و محراب پیامبر با اون دل افکار با اون قامت حمید با اون پهلون فاطمه داره میگه و سلاتت تطهیرن لکم و سلاتت تنزیحن ان لکبر خدا نماز رو واجب کرد که شاخ کبرتان را مسلمان ها بشکنن و کهب رو از وجودتون ببرن اونی که امیر مؤمنین دارن میگن فاطبه 25 سال قبل گفته است و باز موکنده جا داره یه ده دیگه دیگم بگم،, بگم بعد بگم این جمله رو استفاده کن امیر و مؤمنین وارد میشود یعنی ریشه این ماد ابن ایسا راوی راوی معروفیه مانعن گفت امام صادق هم در سال 128 زنادقه میان بیرون این طور میکنن این طور میکنن این طور میکنن گفتم آقا این رو به علم امامت میفرمایید؟ رامدن نه این رو نظر توفی مصحف امی فاطمه نه اینو از مصحف مادرم فاطمه میگم گفتم آقا مصحف مادرتون فاطمه چیست؟ در وقتی که رحلت رسول خدا شد و اون قم سنگینی که جز خدا نمیدونست چی میگذره به فاطمه پیش اومد؟ گاهی امیر وارد می شد می می‌بینید که فاطمه داره زمزمه می‌کنه فرمودن فاطمه جان چیست فهمودن علی جان خداوند ملکی رو می فرستد با من سخن می‌گوید و مطالبی رو به من میگه منو تسکین می‌کنه فهمودن بگو فاطمه جان مطالبی رو فرمود امیرمون فرمود فاطمه جان من بعد من قلم میارم به تعبیر خودمون من ابزار نوشتن میارم وقتی این مطالب گفته شد بگو من می‌نویسم فاطمه امشا میکرد ولی املا میکرد. جمع این شد یه مجموعه به نام مصحفه فاطمه که نیست مگر در نزد احمد علیه و, و سلام و امروز در دست وجود نازنین حضرت ولی عصر که حقایق وجود رو خداوند به فاطمه میگفت و مکتوب میشود. رازهایی از خلقت و آفرینش. حالا این فاطمه با این جایگاه کمیر المومنیم وقتی دستش رو از خاچ فاطمه مثل مشکی جدا کرد لفظ زیده هومن ترا بالقبر حاجب الهزن دیگه نتونیس از جا بلند شه خیبر و گفت نفسی علا زفراتها ها محبوسه یا لیتها خرجت مع زفراتی یادی کنم من همینجا به این مسیبت بگذاری چریک بشن یه سال من اومدم اینجا مرحوم آیت الله های امامی رفته بود سال بعد اومدم آیه حاج رسول گرشیازی رفت امسال اومدم مرحوم آیه سماییان نیست بین ما نمیدونم سال دیگه نوبت کدام نیکه از ماس حسیزون خداوند به حق صدیقی تاهره درجات همشون رو انشالله رفیب فرماید جا دارد که امیر المامنین بگه کاش میشد با های علی جان علی در کنار قبر کنا از تند در می الله صلی